أعوذ من الله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعیم اللهم صل على محمد و آل محمد و بارج على محمد و آل محمد و على أعداء محمد و آل محمد من الآن إلى قيام يوم الدين إن شاء الله محمد و محمد بر ما لطفی داشته باشند و اعنایت کنند بس امروز رو آغاز بکنیم تنبیحون لا یخفا علن که ان قیامت دلیل على صحت سیر الاغلاییت کلن او بعضن و امکان کافیم فی قجیتها اقلاً و صحت بهتجاج به ها هین ایز بین العبد والمولا ولکن صحت و صیرت الله تستل زمکونه ها ممزاتن شرعن بحث ما امروز اول اولین اولی نکتش تنبیه است طبقه هر روز من یک جزوی برای شما میریزم اینجا تنبیه در مورد ادامه بخص دیوزه. ما با دو دلیلی ثابت کردیم که نه هر سیله اغلایی بلکه سیله های اغلایی آم و سیله های اغلایی خاصی که ملحنه به آم است. خوزش رو گفتیم. گفتیم بعضی از سیله های اغلایی حجت هستن اون هم بارد هست از سیره های آم و اون ملحف ها وقتی حجیتشو اثبات کردیم یعنی چی حجیتشو؟ یعنی گفتیم اینها صحیح هست با دو دلیم نرمی و ایلنی گفتیم اینها صحیح هستن خیلی خوب, خوب. یارمون باشه برای چه کاری دنبال اثبات صحت بودیم برای در مسجد استعمال حکم شلی ازش بهره ببریم یعنی اون فلایندش در باره اینه فلایندش بگیم سیره اقلانیه آمه به اضافه سیره خاصیه ملحبه این با دو ثابت شد که صحیح است خیلی, خیلی. حالا که این ثابت شد صحیح است از در راه استنباط حکم شرعی از آن بهره میبری یعنی <تصفيق> میگیم آقا مثلا اقلا سیرشون بر اینه که در مناطق به لباس سفید میپوشند این سیره صحیح هست سیره صحیحه است وقتی این سیره صحیح هست تو بسنیم از هر شکمی شریع استنباد کنیم چطور می کنم استنباد کنیم می پس شاره استعمال لباس سفید در مناطق هاره حرام نمی یعنی الان می‌خوام یه حکمی را به شاره نسبت می با صحت با اثبات صحت سیره با صحت سیره, سیره با اثبات نه با اثبات صحت سیره حجم شرعی چجوری؟ حجب شرعی چه با اون سیره چجوری هست؟ مناسب مماثل. یا مماسب حجب شرعی مناسب یا مماسب آن؟ جل. جل یا بگو اثبات می‌شوند دیگه اثبات می‌شوند می‌تونم که شعاله جل کرده همچین حجبیلا این تنبیه داره کاسکوزه های این بحث رو بهم میزن با اثبات صحت به حکم این نمیشه رسید. ببینیم حالا چطور لا یخقا کرد. مخفی نمی باشد بر تو اما دلیل دلیله علا سهت سیر الاقلائیت کلن او بعضن این دلیل که بر سیری اغلاییه حالا کلی یا بعضی از اقسام سیری اغلاییه کلم یعنی همه سیره ها که این نتونستیم اثباتش کنیم بعضا هم اشاره به همون است که اشاره به تفسیریست که دیدوست تموم شد بعضا یعنی سیره خواسته نه این بعضا یعنی سیری آمه و بعضی سیره های خواسته که ملحقه به اوست اینو میگه اما تفسیر دیگه پس بنویسید روش سیری عامه به اضافه سیره های خاصه ملحقه به آن که اشاره به تفسیر مزکور اشاره به اون تفسیر گذشته است روی اون دلیل هم قیام دلیل بنویسید هر دلیلی که اون دلیل های چهارگانهی که قبلا دیدیم دلیل های چهارگانه یا دلیل های دوگانه دو تا دلیل لمیو و اینی اون دلیل های چهارگانه دلیل بود برای اثبات حجیت همه سیرا کلا اما این دوتا دلیل نمی اینا برای اثبات بعضن بود خب میگه که وقتی دلیل آوردین این سیده ها رو اثبات صحتش رو کردید این و امکان کافی هم فی حجیت ها عقلن و عقلن موجت یعنی این سیره عقل شما میگه چون صحیح هست پس قجته میتونید بهش احتجاج کنید و صحت احتجاج به این بین العبد والمولا که صحت و سیرته میگه ولی صحت سیره نمیتونه پلی باشد شما رو برساند به رسانت به لا شرید ما زمکونه ها ممزاتن شرع. لازمش امضا یا توسط شاره نیست. خب یک چند دقیقه رو این کار کنیم. منو یه لحظه ببین. چرا سیره ای که این همه زحمت کشیدیم اثبات کردیم، س... ثابت کردیم؟ صحیح هست. چرا به درد وریش نمی چرا برای من کاشف از حکم شرعی نیست؟ ببینید بله مثلا سری عام سری عامه با اون دو دلیل گفتیم اون چهار تا دلیل چه قبلش آوردیم تقریبا همش تو سری عام جواب میداد بعد که تفصیل دادیم دیگه دو تا دلیل المی و ثابت کردیم سری عامه حجت حجت سری یعنی صحیح هست خب چرا به در دوج شری نمی کاره ببینید مهم ها الان این تو فقاحت لازم دارید لو اگه زارش فکر کنید نظری دارید بگید شارات تاییدش کرده بسه. چرا به شری ما چه قبلا گفتیم گفتیم اگر اثبات صحت بشه نیازی به تایید شاره نداره یادته حالا اصلا خودم به اساستون ها نیازی به تایید شاره داره یا باید چی و چی؟ به در واقع سیمای با وحی عقل. یه ملزمه با بین دو. اما حالا با... بین سیره با وحی معقل یعنی سیره اول سیره چه یقینا صحیح هست سیره یقینا. خب این ماشا سیره با وحی سیره. آره. این ملزمه است با چی؟ با وحی. آه یعنی هر چون گفت با... اونو می‌پذیره ولی با... فعنی... یعنی عقل شما میگه که تو مناطق حاره سفید بپشید چجوریه؟ عقل که کار ندارد اهل بسقوب اینجوریه این اینکه لباس سفید میپوشند این حکم است نه عقلی ملازمه بین این سیره اقلا با حکم عقلی که سخته درسته؟ بعضی از سیره های عامه برخواسته از عقل است. درسته ولی این برخواسته از طبیعتشونه یعنی دیده سیاه میپوشه اذیت میشه لذا سفید پوشیده این بخواست است عقل به اون معنا نیست لیسا اینو نمی دنبال شما بیان اما اولش اون مسیرمون جدا میشه اما برای حرف گلی الان ما رو یه دفعه زد تو زوقمون دیگه ما این همه سیره ها رو داشتیم اثبات میکردیم که سیره ها صحیح ها بعد الان همه یکی خب باشو صحیح فقط به درد احتجاج بین شما و خدا خودتون میخواد و لا اصفات و حکم شریع ازش نمیشه خب جوابش حالا خودم میگم ببینید که اون چه شما گفتید تقریبا همینم میگه ببینید سیره صحیح هست باشه سیره سیری صحیح یقیناً هم صحیحه بشه خدا هم صحیح ولی صحیح بودن سیره به معنای این نیست که شاره اونجا اومده و طبقه او یک حکم شرعی جل کرده باشد دلیل میخواد اگر میخواد جل حکم شرعی رو اثبات کنید خب دلیل میخواد صرف سیره دلیل و جل حکم از خدا نیست میگیم بابا جام مگه تو شبیه بساید عقلی نیست مگه آبا شاید شما خواست اینو بگیش میگیم مگه شبیه بس عقلی نیست مگه ما اگر عقل ما حکم می کرد می گفتیم کل ما بحکمت به العقل بچا به شرع حالا اینجان کل ما جرا علیه العقلا بنا علیه العقلا بچا به اشاره دیگه یعنی عقلا تقوی سیر رفتاب کردن پس شاره حتما تقوی حکمی داده دیگه جوابش اینه نه تو همون عقلش هم چی گفته هرچی عقل هرچی عقل گفت شاله هم همونجا همون حجم همون شریشو داره مگر ازگری خودت دیروش رو بند خدا بگفتی اونجا نشناله نشستی پیش خود آره برو آمار برداختا مریضه یه مریض میشی از درس میمون های اسکر اینو داره میگه کل بحثم عذابت هالا این بوده سیره ها اگر هم ثابت شد صحیح هستن خب این صحیحه دیگه بیشتر از این دیگه به درد نمیخوره صحیحه خدا اگه یه وقت گیردار بید دبا آسیری صحیح بود دیگه اما به درد اثبات حوش میشه و نوشتن طول ساله نمیخوره جوابشینه چرا جوابشین اینه از که چون ملازمه ای نیست بین این که سیره هر چی بود حکم شهری طبقش ساده بشه باید امزا اشاره جل ها حکم جل ها حکم با سیره که نمیشه بعد بگیم آقا جان تو عقل هم. مگه نمو که هرچی عقل میگفت شاره هم حکم میکرم میگه نه اینو همه نپذرفتم الان تو مقدمه واجب مگر مقدمه واجب عقل ما نمیگه واجب است احوان میگه مقدمه واجب واجب ولی شاره لزومن حکم شرعی دارد میگه اگر شاره به شما گفت که فردا صبح پشت بون باش خب اون واجبه نردبان گذاشتان واجبه عقلی است شرعاً دیگه نیست که حالا هی به اون واجب عقلی پس واجب شرعی هم هست یعنی باز دیگه این جامعه طور سیره برای یک چیزی داریم صحیح هم هست ولی خب برا عمل کن. خوش باش کسی جیر به نخواهد داد چون اعتراض میتونی بکنی بهش اما طبقش حکم شرعی در رساله بنویسید نه حالا بخونیم اینو ببینید که ولکن صحت و سیرت لات هست تلزم کونه ها ممزاتن شرعت و ذلک لم عرفته اینجا ببینید قاله میشه از این حرف من انل الامضاء هو جعل الحكم المماسل جر ببینید جر جل. جعل الحكم المماسل اول المناسبه و من الواضح ان مجرد حجیت ال ان مجرد حجیت تل ال لا لای ازتلز معاضل بله ما چشم کردیم که سییر اوقلایی صحیح هست حجت لی است این حجت ارلیه شادهبال گفت حجیت ها اقللا صحت به ها. خب این حجت اقلیه کافی نیست چی؟ و من نوازه النموذج از در حاجات العادیته لا يستلزم مهازل جعلها منظور بخونید بخونید الا این چه اون قاعده ملازمه رو بپذیرید خب الا بناء على اعتراف به قاعده الملزمه قاعده ملازمه رو یه نفر بگه یه نفر روی قاعده ملازمه چی بنویسید یه نفر بگید قاعده ملازمه هر شرط ما بگید کلمه کلما کلما مبتدا کلما عجب بهر عجب عجب به شهر اینو برای چی گفتید الان اینو برای چی گفتید چه سوالی اولو قلاو ما همچو اهل نداری آه, لباس سفید پوشیده از طبیعتش بوده کلوا باشه اصلا کلما عجب العجب بشه باشه اینجا چه ملازمه ای هست بین سیره و و اثبات حجم شهرین پس دقت میکنین اینجا اگر حالا من این رو جمعش کنم براتون. تو اگر منظور کتاب از این قاعده ملازمه کل ما ها چما به الهل ها چما بحث ما ندار؟ چون بحث ما عقلی نیست خودشون اتراک کردن سیرای و غلایی خیلی از اون عقل برخواسته نیست این است اما <تصفيق> خب تفصیل ندادی که اگر اون بود اگر اون بود تازه اون یه مشکل دیگه پیدا می‌کنه. اون اینه که اونجا ملازمه بین حکم عقل و حکم شهر پیدا میشه. نه این سیره یعنی سیره علن ازش چشپوشی این اینا می‌ذارون داشتیم سیره رو اثبات کنیم حالا آره شما میگی کل ما هکم به عقل هکم بهشتر خب همون عقل در واقع سیده کاشف از عقل میشه عقل کل میشه به هچ به شهری این منظور اینا نیست منظور اینا اینه خود سیره صحیحه برای من ثابت کنه هچ به شهری لذا اینو اینجوری جمع کنیم این قاعده ملازمه اگر کل ما هکم به عقل هکم بهشتر چون خب از بسه ما خارجه ما اینو رو بس هم. اگر منظورشون کل ما حکما بهل عقلا یا بگو جرا علیهل عقلا حکما به شر این قاعده ملازمه خیلی قاعده خیلی باید بحث میشه روش اون رو باید خیلی خوش کار کنم خود عقلشون نمی‌پذیرن حالا سیره رو پس اونجا بنویسید منظور یکی از این دو تا احتمال هست چه من فکر می‌کنم منظورشون همین کلا ما حکما بهل عقل نزاع اشکال هم اینا وارده بسیار خوب و اما بچول حاجت اله الامضاء في سيره الاقلائيه حتی بعد فرض ها. ببینید میگه چه آخه مؤلف کتاب هی به ما ورده داده بودی که این سیره اثبات صحت بشه دیگه کافیه چه نمی‌خواد امضا نمی‌خواد الان گفتی امضا میخواد میگه آره علت داره و اما وجه هلها جته در امزا در سیره و میگه بابا جان هر سیره و نه اونایی که صحتش ثابت شد میگه باشه حتی از فرض صحتها فهوان در مفروضه که اونها ممایده و فی طریق استنباط حکم شعری چون شما این رو میخواید ازش برای استنباط حکم شعری استفاده کنید یعنی بگید شارع در اینجا حکم شرعی دارد جعل کرده است اینو مخاطب بگید دیگه خب باید امضای اینجا باشه دیگه یه چیزی جعل کرده باشه دیگه و 하자 لا یو قالو معقول نیست الا انسان قامت سیرتو مقترنتاً به جعل هجمه من نهایت شار این باید مقترن با جعل هجمه باشه از سوی شاره و الله شما بگو را. سیره و قلایه صحیحه دارین نتیجه این است که شاره جل کرده است ولی نیازه به جل نداره خموش خیلیه میشه که معقول نیست تناقض میشه باید تطویه جلیب باشه خیلی خوب اگر جلیب میخواد باشه سیره ملازمه با جل شعره نیست پس این من اینجا می نویسم می نویسم تنبیه این رو میخواد بگه. بگه که سیره صحیحه همو سیره چه ثابت یک <تصفيق> <مستلزم> رو سنیده هست مستلزم جردشاره جرد حکمشاره نیست تنبیه اینو میگه پس چی میشه؟ به چه دردی میخوره؟ چی میشه؟ یک حجت عدلی حجت فجعت یک موزه الیومت ای خدا به جیردا میگه آقا سیریه صحیحه بود ما هم تو سیره داشتیم امام برای... برای... که ما بلد برای که استانبول رو مشعل بکنیم یازدی نو نو نو نو نو نو نو نو نو اما شاره حکم شهری جل نکه پس شما نمیتونی تو رسالت در مورد این سیره و این یعنی فعلی که سیره پشتیوانی میکنه ازش در موردش نمیتونی تو رساله حکم بزنی به اسم خدا نس این نه اینجا دلیل لفظی نیست که درین لبیه سیره تلبه هیچ بدل درد یعنی حالا از اصول باید بندازیمش بیرون چون اصولی برای استنباط کار میکنه دیگه اصولی برای استنباط کار بدل درد استنباط نخر هیچ یعنی فقط خود چه موضوع میخوره که خود موضوعه باشه تا سر بکنه حالا بدل درد خورد نمیخواد نه این مال مو... موضوع نبود که نه نه. این مال هو چون بود در عوض یعنی اونجا به درد تشریح اونجا به درد استنباد نمیخورد چون سیره ها اصلا مال موضوع اون پس گذاشتم کنار بیدید دیگه این هم که به درد استنباد بخواست بخوره از همین جیری که الان بهش دادیم مشکلی ایجاد شد دیگه بگذاریم کنار استنباد باش مگر که شما بگید نه آقا من میدانم هر سیره ای چه صحیحه باشد شاره حتما طبقش حکم جرد کرده است این همین ملازم است که گفتم و سام باید مقدمه واجبه دیگه مقدمه عقلی واجب مقدم مقدمه این منظوریه مقدمه, مقدمه واجبی که عقلا واجب است لزوماً شرایطم واجب ممکن نباشه؟ نه کلیم چون این این کنار سری اقلایی مادرم امضا باق نشده. سری اقلایی امضا باق نشده؟ نشده نشده. خود خود صورتی باید استعلامی اصلاح کرده کیچی. امزاش ببینید امزاش نیاز به دلیل داره یه دلیل میتونه سمیم ملازم باشه یه دلیل دیگه هم حالا اینجا نگفته این ببینید چطوره اگر ما قاعد بشیم شاره ما من واقعتن و ولهو حکمون فیهان اگر این رو بگیم خب تو این سیره که صحیح هم هست حتما شاره حکم داره توی یه یه حوش رو داره دیگه این, این را حتی اینو میشه گفت بگیم شاره تو هر جریانی حتما یه بچ میداره پس این ملازمه ولی شاید منظورش از ملازمه همین باشه که بگیم یه، نه دیگه ملازمه نیست تأمیر، تأمیرم ملازمه نمی کنه این را هنوز نمبر میدم اون الا که چون استثناء مماره. این را و نام بر احتراف به قابلت ملازمه بله یعنی این ایشون بگی بگیم اگر اینکه شما قاعده ایم این خسرداری شما قالملظه از و این سیره برخواست از باشه باشه نه اصلا رو برش کن همین سیره صحیح سیره ببین ببینید و نه استتصا اینجا میگم رو میم میگه سیره صحیح مستعرضزمجلله هاج مشارالت نیست مگر اینکه قائل به ملازمه باشیم ملازمه هم یعنی هرانچه عقل اور کرده شرح هم اور کرده حالا اینجا عقل مجمون کرده چه؟ این پیاده بشه پس چرا رفع داده؟ خوش بشه ده ده ده ده. ما اینجا بس اینجا پس سیله احتمال دوبارا طبعیت میکنند شرح هم حکم کرده اگر این قانون رو بتونید اثبات کنید هرانچه سیره اقلاع است و صحیح هم هست شارع خبرش حکم داره و خودش بسابت میشه دیگه چون سیره صحیح داریم ما لازم میاد به میشه، نمیشه خوش ثابت میشه یا اون دومیش که کتاب نباد من ارز کردم یا این که قاعد بشه دیگه نمیدیم سمورو اون رو خوشه کتاب میشه یا که قاعد میشه مامل واقع اتنال آقا به شارعه ها اون موقع اینجا هم ثابت میشه که حکمی هست بالاخره اون هم خلاف این سیده نمیتونه باشه خلاف سیده صحیحه نمیتونه باشه پس روی اون اعتراق به قاعده ملازمه اول اون دو احتمال رو بریم سید بعد این چیز سوم رو هم بریم سی. و همچنین دو موقع فرمایت از یه تازه مسیر کرد باشه یکی تو اما میخواد دیگه توی زمین دوباره بفهمیم اونجایی که شاید ما نمونه تبلیغات تازه مسیر کنیم دوباره مناظر آنها علامیه است بگیر آره اون سینفیساني هم علامیه استیم سینفیساني بنسیم اونجا هر دو تونو ببینیم اگر اونجا امر کرده باشه اون شاید راحت تر باشه آره اینجا هیچی نیست فقط یه سیره داریم سیره سعییه داریم لذا مناتی که یک شنبوشه که داره حالا ما یه سیره ای صحیحه باشه ام هم چلد باشه عمل کنه چشکا دوره خیلی یکیش یکیش کافیه آره یکیش کافیه حالا این منات اول که صحت سیره بود قبلا میگم به ما برده داده بود که اگر صحت سیره ثابت شد دیگه چیزی نمیخوام یادتونه برگردین همون به نظرم اول جایی که این منات ها رو گفت الامرال اول صفیه سیزده ببینین منات حجیت ها اونجا که الامرال اول منات اول چشف ها انسه ما بنا علیه الاقلا و عدم خطای اونها در او سیره و این از لا یحتاج الاملو به سیره یا احتجاج به آن الا چشف الحجم شریه مماسل یا مناسب، لاطونه اونجا خودش کن. گفت گفتی که همون صحت سیری چش بشه کافیه دیگه لازم نیست شما چشم به حجم شعری ما ماصر و اینها بکنی ولا فور زعن صحت ما بنا علی الاغلا ملازمه لزاله که امال قائده الملازمه اول ما دل ادم عدم خلوف الواقعن الحجم الشعری البته اینجا با اونجا ملافات نداره ها الان من دوباره دقت کردم موافق نداره چون اونجا میگفت که طبق این دو حکم شهر ایسابت بشه حالا پاس یه بار دیگه این رو با هم نسبت شد بسنجید ببینید منافعت داره یا نداره به نظر نداره بسیار خوب این هم از این پس روی تنبیه من میگوسم که به صفی 13 رجوع شد بسه منات 13 بود دیگه ها منات اول ببینید منافقتاره یا نه خیلی خود الان باید چه بحثی رو داشته باشیم صرف اول از عدله که مناطش این بود سیره ای صحیح هست وجود سیره ثابت میکردیم صحیحه و طبقه همون میخواستیم به حجب شریع برسیم که تیرمون به سند کرد مگر که ملزمه اونها رو ثابت خواهیم اما صرف دوم چی میگه صرف دوم میگه که شعاره اینجا دیگه دست به کار شده. اعلام داره اشاره. اعلام داره دیگه با ثومی هم فرمودن تو ثومی ممکنه سکوت باشه اما تو دومی دو سکوت نیست. شارع اعلام میکنه. حالا یا امر هست میگه به سیره عمل کنید یا بیان حجیت هست منشه حجیت هم میگه اگر به این سیره عمل کنید معذوریت ها خب یعنی که سیره رو تبود داره شرقا یا مردم رو حواله میده به اینکه میگه برید و هرچی عقل خودتون در مورد سیره ها میگه به همون عمل کنید خب عقل ما هم میگه به سیرا عمل کن دیگه این سنف دوم اگر پیداش بکنیم کارش فس باش میشه خواهد ولی حیف که نیست چنین ای در عدل ما پیدا نمیشه ای داشته باشه که شاره امر کرده باشه از سنف من منر عدلت سنف سانی. آدرس بنویسید دوباره صفحه 14 که اونجا صفحه 2 بود و صفحه 24 توی این دو جا اینو اشاره کردیم حتما آدرس بدید اینا رو هی hey, اینجا رو به اونجا آدرس بدید اونجا رو به اینجا آدرس بدید الان همین برگردید همون صفحه چارده آدرس بدید به اینجا تو مطالعه و از هاتون و همچنین تو تدریستتون اینا به درب میخوره پس امرسانی من سنت من من الادلته ادلته امر شاره به اتباع سیره الاغلاییته عدل ادله که امر کردن از شارعه به اتباع کردن سیره های اغلاییه او مناش الهجیت لها مناش حجیت گفتم دیگه چی بود؟ مناش حجیت دو تا چیز بود های موهنگی هست مناشه او جن چی بود؟ یا آزیه هایتون نیست هم قبلا گفته هم همه همی الان گفتم دیگه چی بود های که سری؟ موهنگی هایتون موهنگی هایتون موهنگی هایتون او احالتی الا ما یحکمو بهی اقوله حتما این یحکمو بهی اقوله رو داشته باشید یعنی شاره میگه در مورد سیره به عردتون مراجعه کنید گفت درسته. خبونم سیره هم قبول داره دیگه قبول داره سیره رو قد یستدلو علا حجیت سیرت به انشاره امرا به اتباع سیارل اقلایی قد یستدلو یعنی استدلال شده است احیانا استدلال شده است چه شاره خودش گفت سیره های اقلایی رو تبعیت کنید ببینید اینجا دیگه بحث ما دیگه صحت سیره و اینا نیست سیره ناشی از عمل جبلی و اینها هر هر چه باشه شارع خودش گفت سیره های او قلایه تبعیت کنه میگیم کجا گفته اگه باشه خیلی خوبه دلیل خوبیه کو میگه اون آیه فی بعض شریعت الشریعت کل آیه الکریمته و امر بالعرف و امر بالعرف سوره اعراف آیه 199 میگیم که ما این آیه رو چندی بار سالو خونده بودیم ولی اثباته او جهت سیره و غلایه تو زنمون نرسیده بود چطور بذاره رسید بگید که عرف یعنی چی؟ یعنی اون چی که متعارف بین مردمه عرف بین مردمه همین سیره میشه یعنی سیره ها را تبعیت کنید و عمر بل عرف یعنی به مردم امر کن که عرف رو رعایت کنه، عرف رو تبعیت کنن پس میشه یعنی امر به سیره چطور میگی که ها و نحن نغوص طرفا عن, عن حول هذه الايه الكريمه میگه ما از بحث در پیرامون این آیه کریمه چش پوشی میکنیم نغوص طرف چش پوشی میکنیم و صحیح هو ادب و صحت hazardous استدلاله البته من نمیدونم چی نستدلال رو کرده این کتاب یه تحقیق میخواد که اونایی که از جای دیگه آوردم آدرس جواب واقعی گفته باشه ولی من بگم اصول الان ما خیلی متحصر از شهید صدره اصلا یک کلاس تقریبا الان یک پرستیج داره برای خودش درس خارجم چند سال دیگه برید میبینید که اصلا تیده اصول حالا با که من میرفتم بعضی شنجری بودن مثلا یه بعض اصول رو طبق همون ترتیب که درس خارج ها داره میگن بعد میگن آخونین رو گفته آقای خویین رو گفته شهید صدر رو گفته و به نظر ما هم حرف شهید صدر این درست خیلی معصره الان این هم خیلی از بحث شهید صدر در واقع معصر هست حالا اینو الان نمیدونم نمیدونم چی استدلال کرده ببین صرف شایدم این احتمال اگه می گفت یوم جنا یوم جنا الاستدلال شاید از جهت بهتر بود و صحیح و عدم صحت هاذ الاستدلال جواب بدید به من یه نفر میاد بیگه آقا جم دوم هر مگه دنبال دنباله نمیدشت شارع خودش بگه به سیره ها عمل کن خب گفتنید که ورم با بل عرف پیغمبر رو میگه پیغمبر به مردم امر کن به اور عمل کن یعنی به سیره ها عمل کن جواب بدید جهاد تبریم ایک شمینه استدلال غلط راحت کند راحت کنید روش فکر کنید ببینید چیزی رو زیادت رو خب من گفتم که عرف یعنی متعارف، اونم این یعنی سیره آه. شاید منظور حضور از عرف بسرام عرف امره معروف، یعنی محبه اشاره به امره به معروفه دیگه وعمر بل عرف یعنی همه به معروف بخواه <تصفح> بله، این اشکال بکرده، گفتم بابا جان، این وعمر بل عرف، اصلا به بس سیری وقلوی اینا ربتی نداره بابا جان. و امر بلوم یعنی به معروف عمر کن ون هنر منکر جای هم داریم ون هنر منکر نه هب. از منکر عمر به معروف اینو داره میده از امر به معروف نه از منکر سیده اقلایی ثابت بشه که شعر امر کرده نه نه لذا این رو جدی نمیگیده کتاب میگه اگه کسی خاص تو چه دیگه این رو داریم بدون جمله مطالبه و صحیحا آمد به صحت هزل استدلال لعدم ثبوت کانل عرف ها به معنای سیرل و غلایه پس یار تو ماش تو امتحان نومات همین عاصف عرف معنی سیرای و نیست اون میگه هست ما میگیم نیست و نحیل و طالبه شما میگین آقا خب بحث کنیم روش میگه نه دیگه حوالتو میدین نحیل الطالبه للوقوف على تقریب الاستدلال به حاصل آیت الکریمته و نبز و الابرامفی ها چطوری استدلال میکنم؟ البته من تقریب استدلال رو یه جوری شو گفتم خدمانچه نبز و ابرامش هم گفتیم ولی اگر بیشتر میخواید نوهی رو شما رو کتاب رایت فلوسول افرایت فلوسول من ندیدم فیلی این کتاب رو دستم نموده افرایت بسیار این هم از این اما بریم سراغ سنف سوم. سلف سبب آقای مؤیدین این بود که ما سیره رو نگاه نمی‌کنیم ببینیم خودش صحیحه صحتش اثبات نمیشه از خودش استاد استاد اه... تازه داشتیم ما آقای مؤیدین گرم می‌شدیم آره بله بگو سیره از اندر میاد بخم اون سلف دومو پس کن کلا انگار ما یعنی ما دلیلی در واقع این رو حالا به برکت این فرما شما کنار این از سنفسانی که هست بنویسید سنفسانی یعنی دلیلی بنویسید دلیلی از شاره مبنی بر عمل به سیره ها نداریم ده باید. ده باید. کدوم بود؟ اونجا سیر موضوع بود خودش یه سیره خاصی آه. یه سیره خاصی موضوع حکم شهری بود آره ولی الان داریم دلیلی میانیم که یه سیره خاصی نباشه. شاره بیاد بیدی که آها کلن سیره های اغلایی حجت هست اینو بگیریم اگر گفت سیده های حقالایی حجته است اون موقع از این پل میزنیم و احکام شهری هر سیده حقالایی بود و احکام شهریش میرسیم این نیست اما اون نوع اول از سیره هایی که به موضوع مرتبط بود اون رو با این اشتباه نگیرید اتفاق خوب شد گفتی آیا از خیلی خب این هم بازم باز ما همین در نظر استفاده قرار سنت ای که صالحی را نقض نکن. خب یعنی اولا یعنی این رونانی دلیل بر سنف دوم هم میگیرین به نظر باشه دوستان نظر بدن ایشون میگه همون نوع اول از سیره های که مرتبط به موضوع بود اون با اینجا میتونه مرتبط باشه حدیثش هم خون دیگه ولاتن با سنتن حسنتن همین بود ولاتن با ولا تن قصد سنتا عمل با آره دیگه اون پرلی هم هستازه بگیر هیچ سنت سالهی را نرز نکن یعنی حداقل اثبات وجوبش نشه اثبات مطلبیتش میشه خب اشکال های از خد رو اشکال اشکال خوبیه اشکال خوبیه یعنی جا داره اینجا اون رو بیاریم بحث کنیم این کتاب حواست بله بله درسته پس من اشکال شما رو اینجا تو کتاب خودم می نیمسن آیت کنیم نیمسنم که در آنجا روایتی آمده بود که نهی از نقض سنت صالحه می کرد شاید این ده. حالا میگم شاید چون باید بحث بشه دیگه دقت شاید این دلیل برای همین سنفسانی فسانی به درد بخوره حالا به درد بخوره اینا دیگه عبارت خود درست بنوش خب ممنون آیا اصولی استفاده کردم من پس این نکته شما حالا بعداً رو روش کار میکنیم پس صفحه هم آدرس بدید رجوع کنید صفحه 14 خب والکلام من همین حصول اینه. باید توش فکر کنید. و هیچ که هم عقب ببونه. چون همه اون یکی باید دقت کنید. فقط یه نفر دقت میکنه اون چیزی دقت نمیکنه. بسیار. اما صنف سالس از صنف سالس و من العدلته عدلته استکشاف امزا اشتاره رسیدت الاقلاعیه. میریم سراغ اونجایی که به هراغه مهمترین جای بحث ماست. و آقای مزفر اینا همین جا رو بحث کردم تو سیره. اصلا قبلیان رو بحث نکردم نگار ما خیلی ارزش بحث نداشته یا مهم نداره سنف سانی یه دلیلی نداره. اما سنف سالس حالا سنف سالس خودش چی بود؟ این بود که شارع اعلامی نداره اعلامی نداره چیزی ازش نشدیم ولی از همین سکوتش مثلا ما استفاده میکنیم که سیره ای که هست ممزات هست سویشاره است. ممزات هست یعنی جلل حکم مما مماثل اول مناسب جلل حکم مماثل مناسب چه شد؟ ج. میتونیم تو رسالت بنیسیم و همین مهمترین جایی برس ماست لذا از این بعد اگر تالا چند تا مثلا از از اصل در بحثش چند تا توجه داشتید از این به بعد دقت کنید چون اینجا دیگه جدول راهه اگر هم ادللهش مناقشه بشه و رد بشه پول دیگه سیره رو باید از کتاب پاره کنیم بندازیم دور دیگه به دردی نخوره حالا بنتورس دات من اصل فصل سال من العدله استکشاف و امضاء اشاره آی عسکری امضاء یادته دیگه امضاء یعنی جر جل حکم مماثر یا مناسب امضا شاره لسی رتل اقلایه ما از یه طریق چشم کنیم که بلاخره شاره اینو امضا کرده مثلا ببینیم شاره وایساده جلوش دادن یه کاری انجام میدن حالا یادام افتاد <تصفيق> اوائل که هنوز از, از کشور خیلی معنوی بود و از جنگ و اینا تازه تموم شده بود امام تازه از دومیال هفته سال هفته دو چند بود یادم آیه هاشمی که بود رفته بود یکی ای از این شهرستان ها یا کجا بود یادم رفت خیلی وقت میشون و تلویزیون نشون داد که جلوش دختر بچه ها میرسیدن ایشون هم نمیدونی حالا نمیدارم چیزی گفته بود یا نه. ولی ریشه فرهنگ انقلاب رو از همون, ز... از همون زمان زدن دیگه با همین کارها حالا یک دیگه کاری نبود خوشتفرده کارهای بدتر مثل همین ترویج محواره در کشور ما اینها به نظر میرسی حالا من یه زمان شدیدم که بعضی از یعنی آقازاده ها و اینها نقش داشتن میبینید آخرش رو میریزه دیگه خب حالا اون که مقابل نظرمی بود مقابل ایشون دارن اون دختر بچه ها میرسن ایشون هم هیچی نمیگه خب معلومه ایشه تایید میکنه دیگه. یعنی قبولش داره حالا اینجا وقتی یه سیره ای هست شاره داره میبینه و اینا هیچی نمیگه منظور قبولش داره قبولش داره این که مثل اون بالایه نیست اون سیره سریعه قبولش داره یعنی حکمی داره حکمش حتی دارن که جایز است حرام نیست پس این خیلی مهمه از کردم مزفر رو هم نگاه کن از این به بعدش رو میبینید خیلی خوب هناکه توافه یه گروه هایی كثیره از ادله داریم چقدر یستدلوا به ها الا عن مسیر الا به ذمه بعض زماعه سیره غلایه داریم زمیمه ای رو بهش میچست کنیم. مثلا عدم رده. بگیم آه سیره داریم شاره ردش نکرده یه لحظه من نگاه اون زایید نشاله سیره داریم بله کاری شارم ردش نکرده این مجموعه به ما میده که اینجا حکم جوازه عدم مثلا مناسبه اون دیگه ها هر چی باشه تکشف علم من او حالا این علمن و اطمینانم بعداً هی دست باشه ببینیم علمی و اطمینانی چه تفاوت داره یعنی روچه حسابی علم میشه روچه حسابی اطمینان میشه اطمینان زن نزدیکی یقین از یقین یه درجه میاد پایین میشه اطمینان البته من خودم اینو قبول ندارم اطمینان یعنی یقین علمی میشه ات... ها اون اطمینانی که تو قرآن هست اطمینان این آرامش علاوه به ذکر الله تطبع نلخلو. این نالخلوب این اتمینانه به معنی یکی از اون مراحل علمی هست از وحب شروع میشه وحب شک زن اطمینان علم یقین این مذور اونه اطمینانی که اینها میگن مذورشونه یقین نیست از یقین یه پله پایین تره اونم اونیه که احتمال خلاف میده ولی بهش اعتنا نمیکنن اوغلا بهش اعتنا نمیکنن من اینجوری تو ذهن نیست اطمینان که ما تو درو میکنیم، اطمینان اون چیزیه که احتمال خلاف سوش نمیده اطمینان یعنی همون علم اورفی بله علم منطقی چیزی که هست. است علم منطقی اگه پیدا کردید سلام ما رو بهش بدید خب تکشف و علما اتمنانان عن امضاء اشاره الها پس خوبه خیلی خوبه بریم ببینیم چه ادله‌ای هست که به ریه سیره زمین میگید معلوم میشه که شاره اون رو امضا کرده یعنی جله حک مواصل کرده و عمدته حازل عدلت مایه دین عمده ادله، این اینا اینا چه میاد دلیل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نه تا دلیل براتون میشوریم پس خوبه طبق اون چیزی که اونم گفتم بعد خودا گفتو از این نه تا دلیل یا حداقل درست دیگه انت اگه استرس در بیا سیره امضا ثابت میشه خب ببینید دلیل اول خیلی راحته واسومه وجوبه امر به معروف و نهی از منکر میگه آقا به معروف و نهی از منکر واجب است یا نه؟ نه واسه خاص واسه خاصی ناترس بله 8 دقیقه دو دقیقه این دو دقیقه کل مطلب میچه گفت میگه آقا جان نهی از منکر و امر به معروف واجب است یا نه؟ میگم بله امام که معصومه ممکنه یه واجبی رو ترک کنه؟ نه پس اگر شرایط امر محروف و نحی از منکر محقق بود امام نحی از منکر میکنه حالا یه سیره ایست دارن اجتباه انجام میدن درست نیست شاره اونجا سکوت میکنه؟ نه جدشون میکنه اگر سیره ای داشتیم شاره رنش نکرد پس معلوم میشه که اون سیره رو قبول داره چون اگر منکر بود ادله نحی از منکر میگفتا حال ردش کن نهی از منکر کن شارع معصوم حتما عمل میکنه پس ادله نحی از منکر میگه اگر سیره ای بود شارع ردش نکرد پس اون سیره مورد قبول شاره است چیز بدی نیست شاره اون رو قبول داره ببینید دلیل اول حجوب امر به نهی از منکر قد تدل علی حجیت ال غلایته به عدلت وجوب العمر بالمعروفه و نهی ان به حاضر تقریب از استغلت سیرت الاغلاییت و علا فعل او ترچهی و لم ین هل معصوم و علیه السلام ان الفعل فعل اول اون سیری اغلایی بگه کاری دارن شاره هم معصوم هم نهیشون نکن و لم یع مور تمامه این دوقت رو دیگه نمی کنه باشه فرده سلامت آه. و سیری اللهم سلام نفث مثلاً وجود ام معاشرتی بلکه همین افکار و میتونست اصلاً سنف سنف نکنه. آره. به آره. آره. آره. خاطر همین هیچ تکراری شده بسها، از جا. آره. یه بودار تفسیرمندی بساش جالب نبود. دیدی دیگه مثلا سیری ام پسشوندند باز؟ نس?